از رامین شنیدم به استان خوزستان می روید؟ بلی، من و رامین و سعید پس فردا به اهواز می رویم. زمان خوبی را انتخاب کردید. زمستان برای سفر به خوزستان مناسب است. چون در تابستان هوا بسیار گرم است. راهنمای تور گفت، دوای اهواز مرکز خوزستان در تابستان به پنجاه درجه میرسد از خلیج فارس و بندرهای آن هم بازدید میکنید بلی خیلی دوست دارم خلیج فارس را ببینم به نظر من خلیج فارس زیباترین دریای ایران است قرار است به دو بندر آبادان و خرمشهر هم برویم خوب است بندر امام خمینی و ماه شهر هم در ساحل خلیج فارس هستند فکر میکنم تو قبلاً به استان خوزستان رفته ای درست است؟ بله من ساحل خلیج فارس را در هنگام غروب بسیار دوست دارم شهرهای خوزستان خیلی قدیمی هستند؟ بله شهرهای خوزستان تاریخی هستند و همیشه بخشی از ایران بودند.